جایی که اپسانه ها و قصههای های کهن و پر رمز و راز جانی دوباره می گیرند. امروز قسمت پنجم از داستان جذاب و هیجان انگیز ملک جمشید رو براتون روایت می کنیم. پس همراه ما باشید تا انتهای این داستان بینظیر. در قسمت قبل تا اون جایی گفتیم که ملک جمشید تلسم باغ و هممام بلور رو شکست، با سختی های زیادی رو برو شد که همشون رو با یاد و توکل به خداوند پشت سر و بالاخره تونست به ملک فریدون برسه و اونو نجات بده. اما در اونجا با دختری هم مواجه شد که از پریزادها بود. اون رو هم نجات داد و افغان دیو رو که ملک فریدون و اون دختر پریزاد رو زندانی کرده بود کشت و اونها رو آزاد کرد. و در این میان ملک فریدون و اون دختر پریزاد وقتی چشمشون به هم افتاد هر دو یک دل نسعد دل عاشق هم شدند اما خودداری کردند تا ملک جمشید متوجه نشه حالا هر سه در قصر افغان دیو هستند و از اینکه افغان دیو کشته شده و اونا نجات پیدا کردند خوشحالند ملک فریدون و اون دختر خودشون رو مدیون ملک جمشید دونستن و قسم خوردن که تاپای جان همیشه از هم رکابان اونی باشن و حالا ادامه ماجرا در باب دوم کتاب اون سه جوون یعنی ملک فریدون و دختر پریزاد و ملک جمشید بعد از کشته شدن افغان دیو در کنار استخر نشستم. ملک جمشید رو به دختر کرد و گفت ای نازنی. بگو بدونم تو کی هستی و اسمت چیه و چطوری گرفتار این دیو شدی؟ دختر گفت ای جوون بدون که اسم من جهان آرای پریه و دختر شهبال شاه پری هستم و افغان دیو منو دیده و عاشقم شده. پیش پدرم اومد و منو خواستگاری کرد. پدرم نپذیرفت و اونو دشنام داد و بیرونش کرد. افغان دیو مدتی در کمین من بود تا دو سال پیش که منو از پشت با قصر و آورد اینجا میان این تلسم زندانی کرد. روزی یه مرتبه میومد و گریه میکرد و وصل میطلبید. منم گفتم اگه به رازی کنی خودم و میکشم دیو روز منو آزار میداد تا راضی بشم اما خدا رو شد تو اومدی و اونو کشتی و منو نجات دادی شاهزاد ملک جمشید گفت آهان خب حالا چه تصمیمی داری و میخوای چیکار کنی بعد از این دختر گفت ای جبون اگه اجازه بدی میرم پدر و مادرم رو ببینم اگه هم اجازه ندی نمیرم و تازنده هستم کنیز تو هستم و اختیارم به دست توست ملک جمشید گفت اختیار داری ولی حتما برو پیش پدر و مادرت که چشم به راه تو هستم شاید که از دعای تو خداوندم برای من وسیله‌ای بسازه و منم پدر و مادرم رو ببینم که مدتی اونا هم چشم به راه من هستند دختر که این حرف رو شنید پیشش رفت و دستش رو بوسید بعد دست ملک فریدون رو پستید و لب بر لب هم زد و اسم اعظم خداوند رو خوند و شبیه کبوتر سفیدی شد و پرواز کرد و بالای شاخه درختی نشست و از اونجا فریاد زد که ای جوان حیف از شجاعت تو که عقل نداری برای اینکه قدر منو ندونستی و مفت از دستم دادی اگه منو نگه می تا زنده بودم دست از دامنش بر نمی داشتم. حالا هم که منو جواب کردی عشق است اگر به خدا بخواد روزی از خجالتت بیرون میاد بعد هم پرواز کرد و رفت و از نظرها ناپدید شد در این لحظه ملک فریدون طاقت نیاورد و بیتاب شد و صدای شیونش بر آسمان بلند شد و چند سیلی به صورت خودش زد و بر زمین بیهوش افتاد ملک جمشید به بالینش رفت و کمی آب به صورتش پاشید و اونو به هوش آورد و گفت ای برادر این چه حالیه چرا این کارا رو میکنی؟ ملک فریدون که به هوش اومده بود شروع کرد به گریه کردن و آه کشیدن و گفت ای برادر دستم به دامنت بدون که من عاشق جهان آرای پری هستم و حالا نمیدونم در فراغ اون به من چی خواهد گذشت یقین دارم که از بین میرم از این عشق ملک جمشید گفت ای وای چرا زودتر نگفتی که من نظرم بره حالا که رفته این حرفا رو میزنی؟ ملک فریدون گفت فکر کردم که تو هم بر جهان آرای عاشق شدی یا نخواهی گذاشت که بره. از خجالت صحبتی نکردم حالا هم فکری کن که از بین میرم و خونم به گردنت میفته. ملک جمشید گفت برادر جان حالا که اون رفت. چند روزی به من مهلت بده انشالله به دنبالش میرم و اونو پیدا میکنم. مطمئن و آسود خاطر باش که تا تو رو به وصل این دختر نرسونم دست بر نمی دارم. به شرط اینکه تاقت بیاری و اینطوری ناله و زاری نکنی. ملک فریدون قبول کرد و آرام گرفت. شاهزاده بلند شد و دست کلید اتاقهای قصر رو از شاخ سر افغان دیو باز کرد و در اتاقها رو هم باز کرد و از اونها شاهزاده ها و سرهنگان و امیرانی رو که در تلسم بودند بیرون آورد. همه اونها به پای ملک جمشید افتادند و اون رو خیلی دعا کردند. بعدم از اون قصر خارج شدند و وارد باغ شدند. درهای قصر رو هم با همه جواهرالاتی که در اون بود قفل کردند. و اما از اون طرف پادشاه و همراهش که در انتظار شاهزاده ملک جمشید بودند از اطراف تلسم دور نشده بودند و منتظر ملک جمشید بودند تا اینکه همراهانی که به دیدبانی مشغول بودند خبر آوردند هممام بلوری که در باغ بود دیگه نیست همگی تعجب کردن و به اون طرف رفتن و نگاه میکردند که ناگهان دیدن در باغ باز شد و بیشتر از دو 2000 نفر آدم از باغ بیرون اومدن پادشاه فوراً رستم خان رو فرستاد ببینه چه خبره رستم خان رفت و برگشت و گفت پادشاه ها قربانتان گردم مژدگانی که ملک جمشید نامدار تلسم هممام بلور را شکسته و ملک بریدون و همه شاهزاده ها و امیران رو که در تلسم افتاده بودند نجات داده و اینک به خدمت شما میرسند فریاد شادی از دل شاه و دیگر امیران بلند شد و همگی به سمت آزاد شده ها از تلسم حرکت کردند چشم پادشاه بعد از سه سال که بر جمال فرزندش ملک فریدون افتاد که دست در دست ملک جمشید نامدار میاد از شدت خوشحالی بیهوش شد. ملک فریدون دوید و سر پدر رو به دامن گرفت و صورتش را بوسید. بوی فرزند که بر مشام پدر رسید چشم باز کرد و فریدون رو در بالای سر خودش دید بلند شد و بقل باز کرد و فرزند رو چون جان شیرین درباز کشید. بوسید و بویید و گریه و شادی زیادی کرد تا زمانی که دلش آروم گرفت. بعد از اون آغوش باز کرد و ملک جمشید رو در بغل گرفت و پیشونیشو بوسید و گفت ای جوون خدا از, از راضی باشه که در این پیرانه سرا منو جوون کردی و آرزوی دلم رو برآورده کردی شاهزاده ملک جمشید هم دست پادشاه رو بوسید و گفت قربانتان گردم تا زنده هستم جانفشانی خواهم کرد پادشاه در این زمان رو به همه کرد و گفت همه گی مبارک باد بگویید و شاهد باشید که در عوض این جوان مردی ماه عالمگیر دختر خودم رو به ملک جمشید دادم و اونو داماد خودم کردم. وزیر و امیران همه مبارک باد گفتند. ملک فریدونم از این صحبت خیلی خوشحال شد و آهسته به ملک جمشید گفت ای برادر تو به مراد دل خودت رسیدی فکر منم باش. ملک جمشید خندید و گفت خاطر باش تا تو رو به وصل جهان آرای پری نرسونم خودم به وصل نخواهم رسید. بعد هم رفت و دست رستم خان رو بوسید. و پادشاه رو برد میان باغ و در قصر رو باز کرد جواهرات و گوهرهای تلسم شده رو نشون پادشاه داد پادشاه هم گفت ای فرزند این جواهرالات و ثروت هرچی که هست مال خودته و هر وقت خواستی که به ولایتت برگردی میتونی همه اونها رو همراه خودت ببری بعد از اون هم پادشاه فرمان داد که همه سوار اسب ها بشند و ملک فریدون و ملک جمشید هم سوار شدند و یکی سمت چپ پادشاه و دیگری در سمت راست پادشاه قرار گرفتند و رو به سمت شهر حرکت کردند. پادشاه فرمان داد که نقاره ها را هم به صدا در بیارن تا اهل شهر همه به استقبالشون بیاد. از اون طرف خبر به حرم شاه هم رسید و ملکه ماه عالمگیر فهمید که ملک جمشید تلسمو شکسته و ملک فریدون رو نجات داده و در حال اومدن به شهر هستند خیلی خوشحال شد و همراه دایی خاتون و تعدادی از کنیزان به بالای بام رفت. و نگاه کرد و دید که بله پدر و برادرش و ملک جمشید و امیران در حال اومدن به سمت شهر هستن نزدیک بود که از خوشحالی بیهوش بشه فریاد خنده و شادی هم از همه بلند بود زنان حرم هم همشون به بالای بام قصر اومده بودن که ناگهان ابر سرخی آسمون رو پوشوند و دست مهیبی از میان عبر بیرون اومد و ناقافل گریبان ماه عالمگیر رو گرفت و با خودش به آسمون برد و بعد هم صدای مهیبی از میان عبر بلند شد که به عوض خون برادرم افغانی این دختر رو به تلسم آسف بردم اگر ملک جمشید غیرت داره به کوه سرندی بیاد و بعد هم اون عبر ناپدید شد صدای شیون و زاری از بین زنان و کنیزان بلند شد از اون طرف هم پادشاه و ملک جمشید و ملک فریدون وارد شهر شدند و مردم از مرد و زن شاهزاده را می کردند تا اینکه به نزدیکی بارگاه شاه در قصر رسیدند که صدای شیون و زاری به گوش پادشاه رسید پرسید این فریادها این صداها برای چیه گفتم نمیدونیم از میان امارات حرمه و در همین زمان خاج یاقوت نزدیک شد و گفت پادشاه ها همین حالا دخترت ماه عالمگیر با زنهای حرم در بام قصر به تماشای شما و ملک فردون مشغول بودن که ناگهان ابر سرخی روی آسمون رو گرفت و دست مهیبی از میان عبر بیرون اومد و ملکه آفاق رو گرفت و برد. بعد هم صدای مهیبی اومد که عوض خون برادرم افغان دیو این دختر رو بردم به تلسم آصف و اگه ملک جمشید مرد بیاد به کوه سرندی و الان این شیون و زاری در حرم برای همینه پادشاه با شنیدن این خبر آه از نهادش بر اومد از اسبش پایین اومد و همراه ملک فریدون به امارات حرم دویدند احوال رو پرسید و زنهای حرم حکایت رو گفتند پادشاه به سر و روی خودش زد و نالان گفه ای فرزند داغ فراق خواهرت که تو رو ندید یه طرف حالا نمیدونم جواب ملک جمشید رو چی بدم که این همه زحمت کشید و تلسم رو شکست و تو رو نجات داد منم قول داده بودم که دخترم رو به اون بدم. و همونطور گریان و نالان به بارگاه رفتن ملک جمشید اونجا منتظر بود و تعظیم کرد و گفت قربانتان گردم علت این شیون و زاری چی بود که ازم پنهان می اشک بی اختیار از چشای شاه جاری شد و گفت ای فرزن بدون که برادر افغان دیو دخترم ماه عالمگیر نامزد تو رو یه ساعت قبل به تلسم آصف ابن مرخیا وزیر حضرت سلیمان برد. شاهزاده ملک جمشید از این حرف رنگ از چهرش پرید و نزدیک بود که قالب توهی کنه. اما خودداری کرد و پرسید تلسم آصف کجا هست؟ پادشا گفت ای فرزند چی کار میخوای بکنی؟ و شاهزاده گفت میخوام برم این خار رو هم از پیش پای هندیان بردارم و ملکه آقاق رو نجات بدم و بیارم. پادشاه گفت ای فرزند من از دخترم ماه عالمگیر گذشتم. جواب پدر تو رو نمیتونم بدم و نمیذارم که بری. شاهزاده گفت ای پادشاه من چطور زنده باشم و طاقت بیارم که نامزد من در دست دیوان گرفتار باشه و من باید برم اونو نجات بدم حتی اگر بدونم کشته خواهم شد دست بر نمیدارم. پادشاه گفت ای نور دیده ای من تو همین الان از جنگ با دیوان برگشتی چند روزی خستگی در کن و بعد برو شاهزاده گفت امکان نداره پادشاه که دید اصرار وایده ای نداره گفت پس چند روزی به من مهلت بده تا سپاهیان رو آماده کنم بعدن با هم میریم. شاهزاده گفت سپاه و لشکر به چه کار من میاد. من تنهایی میرم الله هم این سکه یه جوان مردی رو هم به نام خودم میزنم و برمیگردم. پادشاه گفت صاحب اختیاری فقط امشب رو و فردا صبح هر جا که خواستی برو. شانزاده هم قبول کرد و اون شب میهمانیی بپا کردند و از شجاعت و جوان مردی شانزاده تعریف ها کردند. و اما فردای اون روز پادشاه و ملک فریدون به بارگاه رفتند و ملک جمشید هم اومد. وزیر و امیران هم همه آمدند. در این زمان شاهزاده ملک جمشید بلند شد و تعظیم کرد و گفت تقاضا دارم اجازه بدین بیام دست شما رو ببوسم و مرخص بشم و به سمت تلسم برم. پادشاه اونو در آغوش گرفت پیشانیشو بوسید و بعد هم فرمان داد که اسبارو آماده کنند و با وزیر و امیران و ملک فریدون و شاهزاده سوار شدن و از دروازه شهر بیرون رفتن تا یک فرسخی هم از شهر دور شدن. بعد از اون شاهزاده از اسب پیاده شد و جلو رفت و رکاب پادشاه رو بوسید و حلالیت طلبید. بعد هم رفت دست به گردن ملک فریدون انداخت و صورتش رو بوسید. ملک فریدون به گریه افتاد و گفت ای برادر من و همراه خودت ببر تا در این راه در خدمت تو باشم. شاهزاده گفت برادر تو خودت سه ساله توی تلسم گرفتار بودی تازه دیروز نجات پیدا کردی پدر و مادرت هنوز تو رو درست حسابی ندیدن از جوان مردی دوره که من تو رو همراه خودم ببرم و البته تو مطمئن باش که تا جهان آرای رو هم پیدا نکنم برنمیگردم. بلک اونو دعا کرد و شاهزاده روی رستم خان رو هم بوسید و پرسید خوب حالا تلسم اسم کدوم طرف هست؟ رستم خان گفت در کوه سرندیب نزدیک شهر سرندیب. شاهزاده بعد از اون سوار اسبش شد و همه رو قسم داد که برگردن و خودش مثل باد اسب رو به حرکت در آورد و رفت و رفت تا هنگامی که غروب شد. اون زمان به جنگلی رسید و اونجا چند تا حلال گوشت و شکار کرد و آتیشی بپا کرد و اونا رو پخت و خورد. بعد هم به یاد یار دلدار خودش خوابید. تا زمانی که صبح شد. از جاش بلند شد و شروع به راز و نیاز با پروردگار کرد که ای پروردگار نمیدونم چی کار کردم که این بلاها به سرم میاد. اکنونم مثل همیشه به درگاه تو روی آوردم. راه به جایی دیگه ندارم. یا منو مرگ بده یا به زودی منو خاستم برسون که مدتی از پدر و مادرم هم خبری ندارم. بعد هم سوار اسب تیسپای خودش شد و به حرکت در اومد و رفت و رفت تا اینکه به کنار دریایی رسید. اونجا دید که چندتا کشتی لنگر انداختند و میخوان حرکت کنند. یه تعداد تاجر رو هم دید که اسباب و وسایل خودشون رو به یکی از اون کشتی ها دادند و میخوان که با اون کشتی ها حرکت کنند و برن شاهزاده از یه نفرشون پرسید شماها به کجا میرین؟ گفتند که ما چار تا تاجریم و میخوایم که به شهر سرندیب بریم. شازاده خیلی خوشحال شد و خدا رو شد کرد. از از پیاده شد و پیش ناخدای کشتی رفت و یه چند سکه بهش داد و گفت من رو هم همراه این اسبم در کشتی جا دو و همراه این تاجرها به شهر سرندیب ببر. ناخدا هم سکه ها رو گرفت و قبول کرد. شاهزاده و اسبش هم به کشتی رفتند و نیمه شب کشتی به راه افتاد. شاهزاده در کشتی بود و همینطور به یاد دلدار خودش عشق میریخت و شعر و ترانه های سوزناک میخوند. القصه مدت ده روز شانهزاد شبها در عرشه کشتی بود و دریا رو نگاه میکرد و روزها هم در میان اتاقش در کشتی استراحت میکرد. روز یازدهم نزدیکی های زهر داشت تو اتاقش استراحت میکرد که یه صدای شیون و قوقا به گوشش رسید. سراسیمه و مستره از جاش بلند شد و به عرشه کشتی رفت و دید که همه تاجرها و اهل کشتی گریه و زاری میکنن و با همدیگه خدافزی میکنن. از یه نفر پرسید چی شده چه اتفاقی افتاده؟ پاسخ شنید که مگه نمیدونی چی شده نزدیکه که کشتی و همه ما غرق بشیم. چونکه یه ساعته که یه نهنگ خیلی بزرگ جلوی کشتی رو گرفته، از هر طرف هم که ناخدا میخواد کشتی رو حرکت بده، نهنگ نمیذاره و هر چی هم که تومه در دهانش میریزن سیر نمیشه و از جلوی کشتی کنار نمیره. شاهزاده خوب نگاه کرد و دید که بله درسته یه نهنگ جلوی کشتی است که دهانش رو باز کرده و اهل کشتی هم خرماها رو دارن تو دهنش میریزن دوباره از اون شخص پرسید این نهنگ عاقبت چی میشه چطوری ما رو از بین میبره اونم گفت ای جوون قاعده یه نهنگ اینه که هر وقت جلوی کشتی رو بگیره اول هرچی که خورما در کشتی باشه تو دهنش میریزن اگر سیر شد و پی کارش رفت که خب چه بهتر ولی اگر نرفت هر هرچقدر چارپا در کشتی باشه دوباره تو دهنش میریزند اگه سیر شد که میره ولی اگر نشد باز هرچی غلام و برده و سیاه در کشتی باشه به دهنش میریزند اگه بازم سیر نشه دیگه بین اهل کشتی قرعه کشی میکنن و به نام هر کی که قره افتاد اونو تو دهن نهنگ میندازن اون وقت یا میره یا خودش رو به کشتی میزنه و کشتی رو میشکنه و همه‌رم در آب دریا غرق میکنه اینطوریم هم که ما امروز نهنگ رو داریم میبینیم این کشتی رو با همه ما غرق میکنه شاهزاده از شنیدن این حرف خیلی متعجب شد مردکل کشتی تکیه کرد عشق از چشاش زیاری شد در دلش گفت ای خدا میدونم که این از شانس و اقبال منه که این بلای ناگهانی پیدا شده و این جمع رو میخواد هلاک بکنه آهسته سرش رو به آسمون کرد و گفت یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم و همینطور با پروردگار راز و نیاز میکرد و طلب اف و بخشش میکرد. میگفت پروردگار رو رحم کن ما رو از این بلا نجات بده. اهل کشتی هم از سیاه و سفید یا رب یا رب میگفتند. در این زمان ناگهان صدای محیبی از دهان نهنگ بیرون اومد که؟ اهل کشتی اگه میخوانی سالم بمونید و کشتی شما به سلامت برسه ملک جمشید رو که پادشاه زیرباده و درمیان شمایه بگیرد و تو آب بندازید خودتون به سلامت برید وگرنه همتونو غرق میکنم اهل کشتی همه حیران شدن که این صدا از کجاست؟ ملک جمشید کیه؟ ناخدا هم فریاد زد ای صاحب صدا ملک جمشید دیگه کیه؟ ما اونو نمیشناسیم. نه هنگ ای زد و گفت دروغ میگید. ملک جمشید پسر پادشاه زیرباد توی این کشتیه. اونو در آب نندازین دست از سرتون بر نمیدارم و همتونو حلاک میکنم. ناخدا هم گفت بگردید ببینید چیه. پیداش کنین و تو آبش بندازیم و آسوده بشیم. یه نفر از کارگرای کشتی گفت ما همه تاجرا رو میشناسیم فقط یک جوان غریب هست که بر دکل کشتی تکیه داده و گریه میکنه حتما اون ملک جمشیده پس همه دوره ملک جمشید جمع شدند و ناخدا گفت ای جمون اسمت چیه از مردم کجایی شاهزاده گفت اسم منو چی کار دارین حالا چه وقت این ساله بذارین به درد خودم گرفتار باشم ناخدا خندید و گفت ای جوان نام تو ملک جمشید و پسر پادشاه زیرباد هستی شانزادو گفت به فرض که این باشه حالا چی میشه مگه؟ ناخدا گفت ای جوان راستش رو بگو تو با این نهنگ چه سابقه ای داری؟ اون تو رو از کجا میشناسه که تو رو از ما خواسته؟ شاهزاده گفت من تا حال به این دریا نیومدم و این نهنگ رو نمیشناسم اصلا اولین باره که به دریا میام ناخدا گفت ای جوون همراه ما به لب عرشه کشتی بیا ببینین نهنگ چی میگه شاهزاده گفت باشه بریم ببینیم و به لب عرشه کشتی رفت و ایستاد و گفت کیست که مرا صدا میزنه ناخدا هم فریاد زد ای نهنگ چه کسی رو میخوای شاهزده دید که لبهای نهنگ به هم خورد و صدای مهیبی از دهنش بیرون اومد که ای جماعت ملک جمشید پسر پادشاه زیرباد در این کشتی دست و پاشو بی و اونو تو آب بندازین تا من برم وگرنه کشتی رو غرق و همه تونو حلاک میکنم. شاهزاده که این صدا رو شنید مسترب شد و گفت ای جماعت نهنگ به گور پدرش میخنده من ملک جمشید نیستم من اصلا پسر پادشاه زیرباد هم نیستم نهنگ فریاد زد آهان همین جوون ملک جمشیده چرا منو معتل میکنید فورا اونو تو آب بندازید که من با اون کار دارم شاهزاده فریاد برآورد و گفت چه کسی دنبال تو اومده و تو رو دعوت کرده که معطل شدی. من کجا تو رو دیدم. من چه هیزمه تری به تو فروختم؟ من که بهت کاری ندارم. اگه تو به من کار داری خودت بیا تو کشتی. در این لحظه تو دیدن که نهنگ نه چنان نعرهی کشید که کشتی مثل بید لرزید. و سر خودش رو همچین داد که دریا از هم شکافت و زمینش پیدا شد. دهان خودش رو پر از آب کرد و پاشید توی کشتی و کشتی پر از آب شد. ناخدا که دید الانه که کشتی غرق بشه. فریاد زد این جوونو بگیرید که الانه که ما قرق بشیم. یه مرتبه همه تاجرا و اهل کشتی بر سر شاهزاده ریختند و اونو گرفتند و دست و پاشو با تناب بستند. شاهزاده گفت ای جماعت میخواین با من چیکار کنین؟ گفتند جوون میخوایم تو رو به آب بندازیم دیگه خودمون سلامت باشیم برای یک نفر که خدا رو خوش نمیاد همه ما کشته بشیم. شاهزاده گفت خیلی خب حالا که اینطوریه یکم به من مهلت بدید. دو دستای منو باز کنید تو وصیت خودم بکنم و دو تا کلمه هم به پدرم نامه بنویسم و بعد هر کار می بکنید اونا هم دستشو رو باز کردند و گفتند ای جوون وصیت تو بنویس شاهزاده گفت اگه کسی چاره این نهنگ رو پیدا کنه و شرش رو از سر شما دفع کنه آیا بازمون رو به دریا میندازین تاجرها و اهل کشتی هم گفتند نه چرا این کارو بکنیم تازه خیلی هم بهش پول میدیم و تا زنده هستیم غلامش میشیم شاهزاده گفت فوری دور منو خالی کنید و از جلوی من کنار برید تاجرها و اهل کشتی هم همین کارو کردند شاهزاده دو رو روی زمین گذاشت و تیرا کمون رو از پشت خودش برداشت و پیشانی نهنگ رو نشونه کشید و نعرهی کشید و الله و اکبری از دل گفت و تیر رو رها کرد ناخدا و تاجرا و اهل کشتی دیدند که صدای ناله بلند نهنگ به هوا بلند شد و چند نوبت همسر سر خودش رو به آب دریا کوبید و اونقدر که دریا توفانی شد و رد و برق شد به نوعی که همه اهل کشتی از ترس چشاشون رو بستن و بعد از مدت زمان کمی دریا آروم شد و اهل کشتی چشاشون باز کردند و دیدن که نهنگی در کار نیست اما جنازه دیوی روی آب افتاده شاهزاده گفت ای جماعت دیدید که این دیو بود و شما می‌خواستید که منو به دست این افریت بدین؟ همه اهل کشتی و تاجرها به روی دست پای شاهزاده افتادند و عذرخواهی خواهی کردند و هر شد زر و طلا داشتند تقدیمش کردند و گفتند ای حق بزرگی برگردن ما داری تو جون ما رو خریدی شاهزاده زرها رو قبول نکرد و فرمان داد که های کشتی رو بکشه و مثل باد به حرکت در بیان. از اون به بعد تاجرا شب و روز کنار شاهزاده بودند و مدام بهش خدمت میکردند. تا روز 24 و که صدای شادی ناخدا و اهل کشتی بلند شد. شاهزاده پرسید چه خبر شده ناخدا گفت مجدی که از دور ساحل پیدا شده و تا دو ساعت دیگه کشتی به لنگرگاه می رسه. شاهزاده خیلی خوشحال شد و خدا رو شکر کرد و بالاخره کشتی به لنگرگاه رسید و ناخدا لنگر انداخت و شاهزاده و همه ی تاجرا از کشتی خارج شدند. فردای اون روز هم شاهزاده سوار اسب خودش شد و تاجرا هم بارهای خودشون و بارش شطور کردند و به شهر سرندیب رفتند. اونا به مدت ده روز در بیابان رفتن تا اینکه به شهری رسیدن با برج و باروی زیبا شاهزاده پرسیدین چه شهری است پادشاه اون کیه و تاجرها گفتند این همون شهر سرندیبه و پادشاه اون ملک بهمن شاه است القصه همگی از دروازه شهر داخل شدند و به کاروان سرایی رفتند و هر یک اتاقی گرفتند و به استراحت پرداختند تا اینکه فردا چه شود و چه باشند این هم پایان قسمت پنجم ما